احتمالاً اون چند مورد نظر من بود بشون نداشتند یک مقاله ای نوشته است آقای محمد رضای امیت ساله از جوانای بسیار بسیار فاضلی که در همین مطالعات قبل از اسلام و پرکلور و مسائل مربوط شاهنامه و زبانهای باستانی و پهلوی و عوستانه ها مطالعات مفصل کرده و جوان بسیار فاضلی است. این در مجلده ایران نامه در یک شماره از مجلده ایران نامه یه مقاله در مرداس نوشته من یه بارم این مقاله رو آوردم و تکثیر کردم برای بچه ها در دانشگاه برتلی وقتی داستان زها که درس می دادم دادن پاکسی کنم ولی الان نسخهش رو ندارم اون اون نسخه عصقی اون رو ندارم در مجله ایران نامه ایران نامه ده سال اولش در آخرین شماره سال دهم ده یعنی شماره چهلومش فهرست ده ساله اینو داد. و حالا من خواهش کنم اگر آقای نو داشتن دیدن اون یکی دو سال، یه سال،, سال، دو سال پیش بکرد این فهرست ده سال چه شد اگه این شماره باشه اینو نگاه بکنن اون مقاله معلوم کجاست حالا بنده هم کنم که نستاره گیر بیارن دارید ایرانه هر دارید, دارید. بله ارز بل. کنم که مقاله بسیار بسیار درجه ایه که بسیار بسیار با است و بنده حاصلش رو خدمتون میگن اینجا مرداس اسم پدر زحاک حالا واجب زحاکم حرف میزنیم قبل از اینکه وارد داستان بشیم زحاک ظاهر کلمه مثل سیفه مبالغه از مستر زهک به معنی هم هست زحاک اگر از مستر زهک به معنی خنده باشه معنی بسیار خنده کننده است اما اصلا زهاک از این ریشه نیست و بسیار چنین چیزها هست درست مثل این که مثلا شیر و شیر و یا سیر که چهار تا سیر داریم سیر در مخال روشن سیر در مخال پیاز سیر در مخال گرسنه و سیر باید وز سیر باید وز از ریشه بابلی اشتار اسم خدای معروفه اشتار شده استیر و ستیر و سیر واحد وزنی سیر این هیچ راحتی به اینکه من نهاب سیر شده اصلا نداری که شکلش میسه همین خوش زنهاک پیمند خیلی نزدیک دره با کلمه عجده ها در اسم این آدم آمده عجیده هاک عجده ها. و بنده مطلبی راجب اجده ها از یه داستان منتشر نشده ای جلد سرخمه حسده فیروز در رو بردم تیر ایران شناسی چاپ داستان اجده ها کشکن ملک فهمن و اون رو سعی میکنم انشالله بیرم اینجا خدمتون برای اینکه یک مطلب مفصلی از بلادی میر برکتور شناس در درجه اول راجبا اجده ها ترجمه کردند و گذشتن خواهی صحنه سحنه برای این اطلاعات راجبا اجده ها رو بدونید که چیا هست و چجور هست و چی درجه. ولی به هر حال این اجده ها هست و در عوستا هست اجده های سستر شش ششچشم در کتاب پروپ هم میگوید که اجده ها معمولا سه سر یا پنج سر یا هفت سر داره این اجده های سه سر همون از یه حوضا اینکه این که ابلیس شانه زهاج رو میبوسه وقت میگه ماری برشانش روید خودش هم یه مار حساب میکنه دو تا هم سر شونش دارم نده میشه سه سر و شش پوز و شش چشم و به این عجده ها در, در و تفصیل های بسیار هست از جمله اونها این است که در موارد متعدد می که عجید حق پلان قد قربانی، پلان قد عصب و پلان قد جاق و پلان قد نمیدون چی عورد به عنوان پیشکش و به عنوان قربانی، به پیشگاه پلان خدا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 شونه زهد وقتی که در بزرگ شدن اینا بعد ابلیس آمد به صورت پزشکی و گفتش که علاجی که مغز سر آدم بدیم بخوره و تا اینا ساکنیش و هر روزی دوتا جبانو می آوردن و می و مغز اینها رو می به این باره بعد هم دوتا دوتا عشپس دوتا آدم خیلی خوب ارمایل و کرمایل اینا بکردم که این خیلی عجوری داره دنیا تویی میشه از جوان ها و نسل مردم داره ورد میفته تدبیر که تونستن بکنن این است که رفتن به صورت آشپز در آشپز خونه زرحاک مشکول کارست و اینا کاری که میتونستن بکنن این است که از این دو جوونی که هر روز آوردن که سرینا رو ببرن و مغزشون رو بدن به محارای زرحاک یکی رو ازاد میکردن یکیش رو و مغز سبک به قوید و مغز سر اون دیگری رو و مغز سر رو با هم قاطی میکردن میدهدن به مارای زهر و به این ترتیب یکی یکی یکی وقتی اینا ادهشون زیاد میشد ست دیلیسته میشد که در یه مخفیگاهی میدشون میداشتن یه مداری گوزفند هم بهشون می‌دادن، میگفتن که بریم تو کن که کسی کس تا می‌گوید که قوم کرد از این کسانی که جوانانی که از زیر تیغ زحاک جون به سلامت بردن قوم کرد این اینقدر اینقدر در عدد پارسی را چه به قوم کرد میشه بود می‌شه بنابراین خور زحاک شاهنامه هم لاحقل خوراک سر ماراش مغز سر این و این بسیار شبیه هست با اونچه در عوستان میگه که عورده بود چیز رو قربانی ها اونه هم رو بود که احور آمزده یا یعنی نمیتونم هم آناهیتا اجازه بدن که این دنیا رو از مردمان تویی بکنه ولی خبول نشد چند بارم این تکرات حالا بعد در شاهنامه میگه که زنحک پدری داشت، پدام مرداس که این کند و داستان می‌رسد. آره، امیدوارم بینیم که مرد به معنی انسانه به طور کلی، مثل, مثل من در انگلیسی یا مثل آم در فارسی که هم به معنی مرد و جنس مذاکره هم به معنی انسان مردم در زبان فارسی اینه. آس رو اشتقاقش رو میاره ریشهش رو میاره بیرون میگه آس از ریشه ایست که خوردنه و مرداست یعنی مردم خورد تو اون مقاله به تفصیل البته بازه اسناد که مداره و بعد این صفت خود زهاج بوده آجیده ها که مرداست یعنی مردم و بعد که رفته رفته این به صورت افسانه و به صورت میتولوژی در کم کم این لغب متولور شده و به صورت اسم پیر زحاق در آمده که اصلا این مرداس قاعدتاً با لقب زحاق میشه. این مقاله محمد روزان امید سالا رو که بعد به دست و یکی از این که داره یا خود من تقییه بکنم آقای ابن یوسف هم می‌دخی اینو چاب کرده در, در لسان جهاز تکثیر کرده میشه ازش خواست و بعد اینجا تکثیر که دوستان چون مقاله بسیار با ارزشی در این مورد بخونم برمال در شامنامه مرداست اسم پدر زهر و زهر چون که عرض کردم اسمش اصلا ها که یعنی عجیده ها. راجب اجده ها من فعلاً بحثی نمیکنم، برای اینکه اطلاعات مفصلی دارم کتاب رو پس کنم در و چاپ شده و میارن بی خود این وقتی شما رو اینجا دیگیرن فهمید کنم که بعد مرداس شده پیدار زهات و داستان زهات به این تحقیل شروع میشه و به دلیل اینکه مردم معنی مرد درست نمیفهمیدن و درستی اینجا که خیلی آدم خوبی هم بود و چنین بود و چنام بود و عرض کنم که تفصیلاتی که حالا خواهیم کنم حالا یکی از دوستان رد کنه بخونه آقای سپند اگه میتونه بخونه سوات میرسه انشال باکه. چهلو چهار سفیر چهلو پنج مرد بودند در سواران سواران نیزه کدار گران مایه هم شاه هم نیز مرد در ترک جهان با خوابال سر چه نامی نام گران مایه بود رجا و برطرین خایه بود مرور آزدون شیدنی چهار به هر یک هزار آمدندی به جا همون گاوزون شا به فرمان بری همون تاضی از خان همه بر خود نیش و شیر برمیش بر و شیر برمیش همچنین به دوشندگان داده بود خاقی شیر کسی, کسی را که بودی نیان بدون خواسته در برگی فراد پسر گد من این یکی که از می بهرش نبود را نام زخاف بود جلیل و سبکسار و ناخاف بود تجا بی خجا بیبرست و شمیه ماندن چون این نام بر پخلاوی داندن خجا بیبرست پخلاوانی شما پخلاوانی شما خجا بیبرست پخلاوانی شما و بعد پر زبان درید دخل داد دستان تازی به زبین ستان وران بود بیبر که بردن نام شب و روز بودی دو بحره بزین به راه و دوشید نه از گفت که ابلیس روزی خداه بیامد آمد یکی سان اینکی نیتا دل محتر از راه اینکی ببر جوان گوش جوان گوش گفتار او را سکر به دوش پیمان خواهم نفر پس اون جه سخن سخون بر بشاهم دلو. دوانید گلگشتو فرمان کرد، چنان چون به فرمون توگن خواهد قراز از تو با کس نبود از تو کس نبودم به دو هرچی بودی سخون سخون گفت جد تو کسی تکران چه باید همید با تو اندرسران چه باید کش پسند کن که از من نباید کنید نمانه بر این خواهی سالتر، همین دیل ماند تو اندرنوار تو اندرنوار، یعنی کلک بکن تو بگیر، بگیر، این سر از راه دیونت دیونت دیونت در جهان، جاه در این گفته من تا جهان را تو باشید یکی تو و کرد خون پدر شد دلش پرزدار به گفت این سزاوار نیست از در نیست به گفت اگر مخدر این سخون فتا و قیمان سلگون دمانت دگرگرگو چین از در خویی خوار و مانت سر این مرد تازی به دام آورید چنان شد که فرمان او برگرد تو این چاره با من بگو. چه روی از راه و بحانه به گفت من چاره سازم ترا تو را سر برکر سر بس خیلی نیست. بله بس تا اینجا روشن دیگه, دیگه ابلیس روزی آمد و زنها که بابا قرد خوبی بود و خیلی خیلیر خیلی بود و بود چه بود چه بود و, چه بود و ابلیس آمد و گفت مرد خیلی زیادی نمیده دیگه کسی که پسری مثل تو داره دیگه این خودی این تخت و اینا به درد اون چه میخوره بعدش کنیم بره این خیلی ناراحت شد و گفت نمیتونم چیز دیگه رو ابلیس چون قبلا قول گرفته بود و توگند ازش گرفته اینا گفت که اگر خلاف رعی منو بکنی توگند به گردن میمونه و بعد گرفتار میشی و به هر حال رازیش کرد بعدم گفت من خودم تاحتیبشی میدم تو لازی تو فقط رضایت بده باقش با, با این است می‌گه یکی مرد بودند در آن روزگار زدشت سوار نوشته. نمیدونم که تا حالا دیدید تلفز عوام تهرون و جهال‌های تهرون یا نمی‌گهن سوار، سوار شد. این در عوستایو از اص پاره. یعنی خواهیتاً باید بشه هم سوار بله بنابراین این که میگن از اون که ما ما شالله تا همشکاه دیگاه و علمای معترم میگیم درستره یکی مرد بودن در اون روزگار دشت سواران نیزه گذار دشت سواران نیزه گذار که فردوسی میگیم مرادش عربستونی هم این هست که نیزه سلاح اصلی احرابه و بهترین نیزه مالی شهر به نام خط مثل عشق خط خط نیزه خطی بهش میگن و نیزه نه نی خیلی درجیه که خوب میخواهد برای اینکه نی هم بسیار به محکمی چوبه منطقه ثبوت و کار فرمودانش آسان برای هر جا فردوسی میگه دشت سواران نیزگزار، مرادش عرب است یکی مرد بود انداران روزگار زد دشت سواران نیزه گذارد گران هم شاه و هم نیک مرد هم مرد بزرگوار هم شاه بود هم آدم خوبی بود زد ترس جهاندار با باد سرکنی یعنی خدا ترس بود بعد سرد مراد آه کشیدنه و قرازه ترسیدن متحصر شد. اسمش که مرداس نام گران اسمش هم مرداس بود به داد و دهش برترین پایه بود چند بار مثل گفتن که داد برنی پانین گهوش که بخش شد بود. تو با قانونه بعد تو عنی عطل رو هم گرفت میشه. هم هم عادل بود و هم بخشنده مرو من رو رو دو پای دوشیدنی یک هزار آمدند به جایی. تمام چارپایانی که میشه دوشید یعنی از شیرشون براند شد، از هر کدوم هزار خودش درزم این هزار رو من بگم هزار ده هزار سال اینا یکی عدد که ما تا کنون هرچی میدونیم در حقیقت عنوان یک عدد در سلسره عداد میدونیم هزار یعنی به اضافه یک با مثلا ده هزار یعنی هزار زب درده ولی گاهی اینا به صورت قید به کار میره هزار میگن یعنی بسیار یک هزار دفعه گفتم این کار نان. و داری تو چه هزار و عربه گفتم نمیخورم من از <تصح> این <از دیم. تصح> اینجایی که دختاران میگه شعب توی یه عشقی میگه هزار و عربه گفتم این این بسیار در بزرگ به صورت قیل کسرت صد و سیصد و و چهل و هزار و اینا به صورت قیل کسرت بکنم میره اعداد کچکی هم به صورت قیل قلت آسمان دومه بروش این عظمت که اندر عشق قرمن مهد جو بی به دو جو دو جو حقیقتا دو تا جو که نبوده این چیزه بسیار کم عرضش اینه که من خیلی می کنم اینجا اون مال, مال که عصب اون شاید بیور عصب یعنی این بود که حقیقتا ده هزار عصب بلی اینجا این که پدر او هست و فرم روایی داشته و اونگه که از هرکون دوشیدن یا هزار داشته یعنی خیلی زیاد داشته فکر می کنم. اینجا هزار قید کس بشه نه هده مرورا زد دوشیدنی چارپای زهر یک هزار آمدن دیر جای آمدن دیر جای یعنی شمرده می شود همان گاب دونشا به و گواب دوشا دوشا صفات فاعلی است ولی به صورت صفات مخبولی به کار رفته یعنی گوابی میشه دوشیدش اینکه خودش بدوشه دوشا یعنی قابل دوشیدن مثل دانا که یعنی این علم داره ولو اینکه الان نشسته باشه، هیش اصلا معلوم نباشه که این عالمه یا حرف نزنه که اصلا نشانی از علمش پیده باشه، ولی دانه هست دوشه هم همی تو لحظه نمیخوان بگن دارم می ولی دوشه هست یعنی قابل اینی تو به همون دعا به دوشه به فرمانبری، همون تازیستان همه گوهری گوهری یعنی با عرضش، با اصل نصب، اصل اصیل بازو شیر ورنیش بر یعنی بود همچنین چنین شیر وار آشنگه وارش پاسوانده پاسوانده اتلافه داره اینا شیر بود بازو شیر وار میش وقت به دوشندگان داده بود پاکیم از بود این شیر اینا مال کسانی که احتياج دارن که میخواد که به دشواری استفاده کنه. به شیر آن کسی را که بودی نیاز به دان خواسته دست بردید من را شیر کسی می از می دوشتید و اصرف می پسر بود من این پاک دین را یکی که از مهر بهرش نبودن انبکی یه ذره مهرم داردنش نبود پسر پسر مزهرافی داشت که همون ذرهای که در که بیمه بود جهانجوی را نم زهد دلیل رو سبکسار رو ناقف این دلیل اینجا در حقیقت معنی بیپهرواز معنی این ملاحظت رحمه معنی اون دلیلی که حاصل میگه نیست دلیلش اون به قرینه محنبی میفهمیم برای چه صفحه دیگری که هم میاد از این نقوله سبوکسار یعنی همون سبوکسر سار و سر یک یعنی سبوکسر نفاکند که روشنه که این بچه اسم سحاک بود رو کجا بیورست پشت همی خواهدن او رو و در پهلوی یعنی یعنی دارنده دا هزار از. و یک جهرمون دیه خدا به نظرم در امثال و شاید در لغتنامهشم راجب این یه تردیدی کرده که بیبر به این معنی نیست و یه مطالبی گفتید که مطالب الان درست یادم نیست اما اون چه به خاطر دارم این است که استاد من مران بودا بود این دقیقا بیور رو ده هزار میگفت بیور هست یعنی دارنده ده است، هست کجا بیور است و شمی خواهندن چون این من برد محلوی ایران برد دیگه زبون پهلوی میشد بیبره کجا خجا بیبر, بیبر پهلوانی شمار پهلوانی شمار یعنی سرزله عدد در زبان پهلوی شمار یعنی عدد کجا بیبر از پهلوانی شمار بود بر در زبان درید هم بذار یعنی اونی که در زبان در می‌گیم ده هزار، در زبان تهلوی می‌گیم بیبر ز اسپان تازی به زرین ستام، و بود بیبر که بردن نام یعنی ساخت از افزار و دهنه و اینا و این زرین ستام که میگن، یه آخه که تمام از تلاس ها بودن خیلی. روی این چرما و این چیزا اینا کار زرین میکردن زینت میکردن این. چیزایی که رو سرش افسار که باید بالا و بهانه که هست و دست جلو و قول خودشون وش اینا کار داشت، و داشته زینا هم همین کارو میکردن و اگر یه وقتی یه جایی چیزی در این زمینه ها در تاریخ که شهر میده اون زینت حالا اون دوزگار دوره سلطان محمود و که همون دوره فرروسی هست این چیزا رو میگه که چجور چیزایی بوده ز تازی به زرین ستم برا بود بیور که بردن اینا. این کلانه رو باید خوند ورا یا ورا اگه بخونیم ورا مخصف ویرا و اگر بخونیم ورا و حفظه او و به هر حال وره درست نیست ورا یا وره درست شب روز بودی دو بحره بزیم بنده خیال میکنم من نمیدونم خدا؟ این بحره یک چندوم شبان روزه بعد نگاه اما تا سبر می‌کنم که یک پنجمش بشه. خیال می‌کنم که یک بحره، یک پنجم. اگه بگم دو بحره از شب گذاشت و سه بحره از شب گذاشت، اینه سه پنجم شب گذاشت. دوزن همه. خیال می‌کنم. ولی بعد نگاه کردیم. من اگر پوستاد نکردم آقای ناصری پول بسیار آدمه جدیه دقیقی ایست فهنگی موینم داره من که اینجا فهنگی ندارم بعض اون تا برس دانشگاه یادم وقتی کنش یارم مراجعه کنم رفت مجید که اونجایی شده لاجه. ولی اینجا نمیشه معلوم جشت چند, چند چند تا بوده که سه بحرش شده در پنج دست اونش از <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> که گفتم بادم تا عید پیدا میکنه، کنه اولیش قراموشیه دو یادم از کنم که دو اسماره تازی بزنید شب روز بودی دو, روز اول دو و دو روز دا سوار ولی نوره چین خواهی و مملکت داری چی؟ برای هرزگی، زراع بزرگی، یعنی جاه طلبی و مقام طلبی، نه از کین که اینجا منی داد خواستن منون جلوگیری از ظالم انطال مقصود فرزوسین هست زمین زمینه رو فراهم کنه که وقتی که ابلیس آمد سواغ این بابا این بابا آمادگی کافی برای که ابلیس که آش داشته چنان بود که ابلیس روزی پگاه بی آمد به سوال یکی نیک سه بار ابلیس بر زهر ساهد ایک اینجاز یه اینجاز میگیره بعد یک بار ظاهر میشه به صورت عشقاز که میگه زهاج رو تا امروز گوشت کسی نمیخورد این گوشت خوردن عوض میگید و یک به صورت که میاد هنگ وقتی که عشقازی... زهاج رو و مارسات میشه بار سرخون به صورت پزش میاد و میگوید که باید مغز سر مردم رو به دیگیسن تا بگیم مارا تا پاس میگوید باشیم بود که ابلیس جوزی بیامد به سوان یکی نیک خواه همیشه ابلیس در لباس نیک میاد من سر اون کلاس به نظر اینجا گفتن نگون گفتن نگون گفتن گفتش که محبیه یه وقتی که قاویده بود ابلیس آمد صداشت و برنشون نمازت داره قضا میشه بعد ما بیو چسبید که خدمت که تو کارت گمراه کردن مردم و تو چه مرگتی که اومدی من بیدار میکنی از خواب که من نمازم بخونم این چه کلکتی گل نه هیچی بیدم نماز تو چیز میشه اینا گل نه بلیس اصور کرد تو بالا حقیقت چی که تو اگر میخوابیدی نمازت قضا میشه و بعد که میشدی خیلی ناراحت میشدی از این که چرا متأصف میخوردی و ناراحت میشد چرا من اینجور گرفتم خوابیدم که نوازم قضا بشه و اون حسرت خوردن و اون تأصف خوردن و اون سختن دل اون سببش از این نواز که تو بخونی بیشتر بود این که من بیاره کن تو بخونه سبب بریسی اینه که ابلیس همیشه به صورت نیکاه میاد چونان مدکه ابریس روزی پگاه بیاند یکی نیفه دل محتر از راه نیکی بگو جوان گوش گفتار اون راسته خود شروع که از کردن و جوانم بردش گوش دادن بدون گفت و که من همچی می‌کنم، همچون می‌کنم، هم کلام می‌کنم کارهای عدستم برمیان که من می‌شاهد بکنم، چه بکنم، چه بکنم، از این هرپا بچه هم که دنبال جاحتلابی و مقام این واضی‌ها بوده به الاخره که حیله خب می‌گه نه، اول باید پیمان پیمان کدید، گفت پیمان خواهم پس آن یه سخون برگشه آگه دقیقاً یه چنین کاری مبالغان و دعیان اسمایی دیگه می‌کردن یعنی می‌گفتن اول و تو قسم بخوری که راز ما رو فاش مکنی بعد از اینکه قسم رو شش می‌خواه می‌کردن بعد شروع می‌کردن تبلیغ او به مذهب اسمایی برای اینکه مسلمان‌ها اسمایی‌ها رو به دلیل اعتقاد نداشتن مهاد جسمانی ملحد میدونستند و واجبر قبض و اگر این بابا که داره باش حرف میزنه بروز میداد که داری یا همچه حرفای میزنه اون همهار میکشتن که قسم میخوردن و سیش میکنه میکردن بعد میگفت حالا من رازم بگم اینا مساحلیست که فردوسی عاشناست باش در این روزگار فعالیت ملاهده او اینا زیاد بوده دکتر زریاب که نوشته که فردوسی اصلا خودش اسپاییلی بوده و شاید به همین دقیقی بوده که تو قبرسون به مسلمان را چالش کنن. ولی دوست من که معددی دامغانی میگه نه فردوسیش یه دوازده نظر بوده هم منم همین. در هر صورت مسئله اون وقتا وجود داشت. میگه ابلیس گمتم. اول باید قسم بخوری؟ و من رواز و فاش جوان نکتل گشت و فرمانش کرد. فرمان کردن یعنی اجرا کردن. بازی منی دیگه کردم، فرمان کردن یعنی فرمان کردن. نکتل گشت یعنی راضی شد اینجا. جوان نکتل گشت و فرمانش کرد. چون به فرمود عرض کردم که فرمودن منی دستور رو فرمان یعنی دستور فرمودن یعنی دستور ثبت اینکه یکی از یکی بزرگتر باشه نیست حالا میگیم عرض کرد اگر یه آدم کچلو باشه اگر هم سر گفت بعدا بزرگتر کنیم فرمود این خب نداره حالا بگیم این به این پرسید ایتیکت رو رعایت کنیم اما کلمه ارز کرد یعنی جلوه باد به نظر رسون گفتند یعنی گفت فرمودن این دستور داد اگر آقایی که بزرگتر بودن دستور نباشه زمین ارزشون این درست به معنی تهتر درست نیست بگیم فرمودن فرمودن من حالا خوش نیست این فرمان نیست با چنان چون به فرمود که زها گفته بود سوگه هم اینم چون مال اسماعیه رو گفتم باید بگم که اینا سوگند رو اینا می گرفتن بعد قضیالی که چیزی می نمیستن در مخالفت با ماگیه میگه که سوگند خوردن بر چیز باطل اصلا چیز نیست اصلا باعتور نیست و این قضیه از اصلش مزخرفه برای اینکه سوگند رو خودش یه قتله نیست که بردار شریعت و شرع به اصطلاح مورد تایید هست وقتی شما قسم بخوری که یک کار غیر به اسلام مخالف شهر انجام بودیم واسه اصلا اعتبار نداره ولی خب ادلیسه میگه صوبتند خورد که راز تو با کس نگویم زبون زبون بشنبم هرچی روی سخان یعنی قبول میتونم شنیدن یعنی قبول کرد به دو گفت جز تو کسی کت خدای چه رایت همین با تواندار سرهاید؟ کت خدای عرض کردن می‌سین که کت، یعنی خانه هست، کت و کده، و کت خدای می‌ساق خونده. در کت خدا و کت بانه به صورت پیش راوند اومده، در می‌کده و بودکده و امثال اینام کده یعنی به صورت پساونده. یعنی میخانه این خانه و خانه هم هم اتاقه تو دکون نوویه سنگکی اتاقی بود این فقط بردش، حالی پنجره چیز نداشت عاردار این رو خالی میکردم تو، تمامش رو با بعد یک کسی هم بوده، هم پیشکار، یه تازو همون تو بود این پیشکار ندارف، اون تو اون عاردار رو علاق میکرد و هر تو اشکال رو بعد میکشید تو اون ترازو. کیسه یا پیتای علاوی دوازده کیلویی یه راست میکرد که پستهیش میزوستن میزوش کنونجا می اون اون که کش اربی کش مواند کته کته همون کبه تو خونه ها همون زغالدونی محقظهی که درست می که خواهی زغال نمیزن نمواند کتهی زغال این کته موانیه و کد خدای یعنی صاحب اتاق، صاحب خونه و معمولاً به کسی که زم میگرفت میگوستن کم خداست. دلیلش این است که من ره در هم درداحت مهم برای یه دون اتاق داره بابا و مردکه و زنکه و بچه هاست و همه و هم میگیرن میخواهم شبت این اتاق آخ که پسری گونده میشه یا دختری وقتی شوهرش میشه دختر که خون نیستن بره که میره خون باید پسری وقتی بخواد زن بگیره دیگه نمیتونه شبت دو اتاق برادر و خوهر و بابا و نهش بگیره بخواهه این میگن شد یعنی برای مملکت هم کشور های میگن یعنی صاحب کت هم... هم... یعنی کت یعنی نه به معنی اینه که همونجا چیزی رو اه... بدون رایه تشکیبات از یه چیزی نتیجه بید. اون کته در اینجا اپ بزن، لفت مازندارمی محلی است، او پارسی است بعد تو حال نشد بدون گفت جز دو کسی کت خدای، چه باید همی بافن در سرا؟ میگه دو نفر که نمیشه، گفت کانه ای که دو کت مانوست، خلق دازن تو دو, دو, دو پادشاه در اقلیمی نگنجا ده درویش در دیلیمی در بخواست تو دو, دو در اقلیمی نگنجا دو تا تو هستی یه کسی دیگه اینجا چوتاره است که این پاتو با اینجا باشه شبه آگر پدر کش پسر چون تو بود یکی پندت از من دو راید چنون. زمانه برای بر این خاجه سر همین دیر ماند با اندر نورد نوردیدن روانی لوله کردن و نورد مثل لوله و نوردیدن روانی لوله کردن و معمولا کاغذ رو قدیم تا می کردن پاکض هستن نداشتن نور رو لوله می کردن و بعد اونجایی که این لوله تمام می شد این محله این که اینجا که تمام می شد یه می چستمیدن و محر می منی دوباره وایستیده. با در نوار پیچیدن و خلاصم ورسدم. میگه که روزگار من این خاصه خیلی طول داده، خیلی زیادی می‌دهد. تو داره در چی تو مار زندگی تو این سر ما یه وارگاه او. راهوانی تخت این تخت از تخت فرمایار و تخت فرزش رو از او بگیری خواه از جهان جاری یه مهدایی هم بخیر تو جوانی، پهلوانی پچه‌های در سرداری، کاره بزرگی خواهی بکنیم چیره مرز اینجا؟ از اینجا این برشتی این این این این دیرگی آلاواتم موردنش دیرگی کراک کنیم کارات تا این گفته منتاری به جهان را تو پاشی یکی کرد کدار به جاوردن یعنی اجدا کرد چو زحاد بشنید و اندیشه کرد زخون پدر شد درش پردیده در. اولین با بود که فکر این که پدرشو بکشه ابلیس به اون که رو الغم کرد خیلی سخت ناراه مثل هر کار بدی که آدم در خیلی که میخواد متکف بشه خیلی نراحتی داشتی بعد کن کن، آده خیجدانش خب کنید عرض کنن این تو زه اندیشه کرد به خون رو گوبر شد بهش پرزه به ابلیس گفتی این نیست درست نیست سزا وعنی تلافی است وارم پسوند و لیاقته سزاوار یعنی چیزی که به صورت سزا من بکنم به کسی بده یعنی سزایی که دار من این نیست که این کارو باش بکنم به ابلیس گفتیم سزاوار نیست دگر بود یه چیز دیگه بگو یه پیشناهی دیگه بکنم که این این کین این که بدون علف نوشته، کین یعنی که این پبلیس گفت این سزاغار نیست بگرگو کین از درکار نیست از در معنی شایسته و سزاغاره و از درکار نیست یعنی قابل اجرا و قابل اتار بستن نیست گرفته بودش تو تله دو گفت اگر پوش زدیز این سخان به تابیز سوگند و پیمان زبان به ماند سوگند و پند شوی خار و ماند پدر ارجمان یا یه از این چیز بگذری از این حرفان بگذری افلا این که قسم بر حوتت بر زمت میمونه حالا پس هم برای کشتانت بیار که پس شرط چیز نداره اینجه به گردن این سوگن و مسئله مهمتر اینه مهم اینه که تو خوار میشی و پدارت ارجامن هست که اون وضع خورش احیاناً در این کلام ابلیس یه تحدید هست به ممکنه بو بوره که کنشستی کمیسیون کردی و حسیه کندن کلاکه بود. چوی خوار و ماند پدر تنجمه، هر سر مرد تازی به ده مهبری. این هر پا گرفتش در آخواه خود. چونان شد که خرمان او برگسید. بپرسید، چاره به بگی چه روگه از خواهو تو همه مجید گفتن حالا چیکار کنیم گفتن بدی کافی به دوبه من چاره سازم ترا به خرشیک ارگاه بگاری داری میکنم سر به خرشیک برطاق درسیم به خرشیک سر برطاق موند گران پادشا را درم در سرای یکی بیندون بود گران مای جای گران مای شبگیر برخواستی از بحر نیایش و سروتن بشستی نهفته به پرستنده با او بردیم با راهش بره بر بکن بره بر, بر بکن <تصفيق> سر تازیان مهتر نامجود شب آمد توی باب بنهاد رو آمد به نزدی که اون جرد چاف یکاید نگون شد سر بخت آ. به چا اندر افتاد و پشکر از, شدون نیتر شدون نیتر شدون نیتر از پس شد و نیتر شد و نیتر نزد یادتن خورم پس ابلیس پس ابلیس با اونه اون شرف چاف به خاک انگر آگند و, و بزفر را به هر نیک شاه آزاد مرد به فرزند و بر نازد بار سر همین فروریدش به ناز و فرنج به دود و شاد و به دود آگند چنان بک گوهر شوخ فرزند اون نجست از ره شرم پیبنده اون بهخون پدر گشت هم داستان ز شنید داستان که فرزند بد گرشود نرشیر به خون پدر هم نباشد دلید. مگر در نهانش سخن دیگر است هجوهند مران پادشاه را درندر سرای یکی بوستان بود گران مایجای یکی اون پادشاه یه بوستانی داشت که درش تو خونه شوانو شد مران پادشاه را درندر سرای ماران پاو در چرا دارن این دارن در سرا توجوخم یعنی تو خونه اش در در بوستان تو خونه اش و می یه مارن یکی بوستان بود گران مایه جاد گران مایه شبگیر برفاستی شبگیر یعنی صب سهر شبگیر یعنی صب صب زود که هنوز هوا تاریکی گرم مایه شبگیر برخواستی ز بحر نیایش برای یعنی خود چون آماده میکرد برای نیایش سراتن بشستی نه هفته به وقت پرستنده با اون نبردی چرا؟ پرستنده گفتم به نظرم تو پرستیدن من خدمت کردن و پرستیدن صفت فایلش میشه پرستنده یعنی خدمتگار پیش خدمت، در شاهنامه همه جا پرستنده به همین معنی، و خادم، و پیش خدمت، عرصه. حالا عرض می کنیم. این پرستنده صفت فایلی است. یک جور صفت فایلی دیگر هم داریم، و او صفت فایلی است که با الف و میاد. حسن علیفوری که در میاد، گاهی صفت است مثل خریدار. خریدار یعنی خرید کننده. گاهی صفت مفعولی است مثل گرفتار. یعنی کسی گیر افتاد. گاهی هم اسم مختره، مثل رفتار و گفتار و کردار. معنی رفتن و گفتار. هر ستاشو علیفوری است، اما مسئله اینه که این پساونده الیفروی آخره ماست در در میاد خریدار خریدن نون مستری رو می‌ندازیم الیفروی در می‌نیم میشه خریدار گرفتن نون مستری رو می‌ندازیم الیفروی در میشه گرفتن رفتن رفتار گفتن گفتار ولی خو خب از پرستیدن بعد دستورشیم پرستیدار پرستیدن نونیشو مندازیم علی فرید ها میرونیم چه خرستیگار ولی به دلیل اینکه این, این دیاز بوده به جای اینکه این, این صفت رو با علی فرید رو از مستر بسازن از فعل عمر ساختن خرستیدن خرست خرستگار خرست در حالی که اگر مثلاً گرفتن رو خواهد، بسازن، گرفتن میشه گیر، بعد بگن گیرار یا گفتن، گوی، بعد بشه گویر نمیشه که گفتار و کردار رو اینا میشه یا کردن، کردار، بعد بشه این کنار خاند و علفه روز، هیچ نیست فقط پرست دیدن، پرست دیدار نداریم، پرست دار داریم که البته حالا معنیه، اونم معنی خادر مطال میبین، منطقه خادر محسوس، اثمال مریض خونه رو میگ یا، یا کسی که مرفی بچه هست سروتن بشستی، با و مفته به بعد پرستنده با اون نوردی چرا مرد از شدت نجابت و انسانیت نمیخواسته که یه خدمتگاه را بیدار کنه که باشه دنبال این را بیفته وقت شب و همراه اون چرا را برای خودش را بلد بوده، هر هم میرفته بنابراین کسی رو با خودش نمیورده برابر وارونه ابلیس و وارونه، معنی ملعون و واجگون و واجگونم هم همینجور، معنی و ملعونه و خطی قدیمی، شما اگر ببینیم من خیلی در خاریس ناسهایی که بود میدیدم اسمای کسانی که باشون مخالفن کاتب بشتونیم، می‌نویسه مثلا شیعه بوده می‌رسده به عمر این کتاب عظیماری می‌کرده این عمر عظیماری نوشته، بعد بر می‌گشته باقی من. یا عثمان یا مثلا ابلیس اینا رو بر می‌گرد اون از اون بعد می‌نوشته این بارونه که میگه، یعنی واجگون وانی معتود و ملونه بستا بیشم که این می‌گن عوضیه بله حالا این که بارونه است واجگون و بعد من یک کتاب چاپی اخیر دیدم کتاب منطقه الامال مال شخ حباس قومی اون کواتبش مردی که به خط نستالید این کتاب نوشته و گرابور شده چاپ شده اون کواتب هم این گرفتاری رو ظهرن داشته هر جو این اسمه آمده اما رو به خودش زحمت ده, ده. این سطحه این برقی بزرگ هم هست اینو برگردونده اونو نوشته برخب وارون ابلیس ای من این معنی شنید براقر بر. وارون ابلیس من یکی جرخ چاهش بره بر بکن بر راهش چاه سر تازیان محتر نام جود. یعنی مرداست شبه آمد توی باق اینها جود چاه آمد به نزدیک آن جرخ چاه یکا یک نگون شد ساره بختش پاشو گذاشت داره که اگر یایتون موشه رستن هم به همین ترتی که پشتنش یه که نگون شد سر بخت شاه به چاهندر افتاق و بشکست هست شدن مید مردی مرد بگزن پرست یعنی رفت شدن و همی یعنی رفتن پس ابلیس وارونه آن جرف شاه به خاکنده را آکنده آکنده پر کردن دلم آکنده از تو یعنی پره به خاکنده را آکنده و بسپرد را رفت اموال خاید شاه پر کرده و رفت بعد الا این فرد از او میگه که و هر نیکوبت شاه آزاد مرد و فرزند ورد معزده باد سرد همین پروری به ناز و به رنج به دو بود شاد و به دو دادگنج یک نزی نشته بود باد سرده این بچه این بچه نعفل که سببزار به وزیر شادیش همه با او بود رو با رنج پرورش داده بود به اون شاهد بود گندش رو به داد چنان بگوهر شوخ فرزند اون شوخ به عنی پرروز بقیه به پرروز صفت بدی اول شوخ به عنی پرروز بخار رفته بعد به عنی چرک تن که دلاک از تن آدم میگیره به کار رفته الان میگم در که حالا معنی آدم زریف و وزله گوه خواهد چیه؟ آدم وقیه پر رو اولان آدم ازش سعی میکنه پرش به فرین پر این نگیره کلوفتی با آدم میکنه چیزی میگه یا آدم باید در سیویل یا باید باش گردگیری کنه هر دوشون کلوف تو کنه این گفت که تو برای این مثال گفتم گفت به گفتم گفتن که تو چند تارا برای در از دست بالا گی، اون خیلی، شاید هزار تا اما بهترین بشینی که نه من این نه منو اون من حال <تصفيق> آدم وقیه پرورو هم آدم سعی میکنه پرش پر آدم نگیره به همین دلیل از شوخ احساس نفرت بوزید. چرک تن هم همین حالا داره یعنی نه تن مردم دیگه از چرک تن آدم برچومین که کاملا طبیعی خود اون بابا همی که تنش چرک کردن دیگه اکراه داره که دست رو چرک تن خودش بزن توی یکی از سفایت عطار از بوسعید مهنه در همم بود خواهمش گفت خواهم یعنی دلاک همون یعنی کسی خیام میکنه خدمت آدم خواهمش کفت آب خواهم شوخ شیخ آورد در باز او جمع کردن جمله پیش روی او پانوهایی خبر ندارن، ولی آقاهایی که همون وقتن و کیسی کش داشتن میدونن که در لکه پشت و کیسه میکشید قشنگ که همون چهرکار میارد بالا میذاشت این بالا، بعد که می شروع میکرد به دست و کیسه کشتن یک خود سرکت میموند بالا همون چهرک رو میارد، می میذاشت اینجا بعد میتکندشن اولاً ببینید بی که من خدمت کردم، بیسه کشتم گفم این که آقا تن تون خیلی چرک حسودت هایی بزید همون بر این از که می در اون حال از شیخ پرسید که جوان مردی چیه شیخ هم گفت جوان مردی برای تو اینه که چرک تن مردم جلو چششون نگیر <تصفيق> بعد بعد به دلیل نفتی که آدم از آدم وویه داره چرک تن رو هم بهش گفتن اما چطور شده که شوخ تو حتی در دور سعدی معنی بروز شوخچشم یعنی وقیه بروز عرض کنم که حافظم هم, هم چطور شده معنی آدم خوشمزشده ولیش تو آدم وقیه درست نیتا آدم تا حیل میکنه که خودش نواسی باش پیدا نکنه برای مردم عادی یه خردوسا و کسی دارن روی شهر دین بودن روی ملاحظات دیگه چیزی نمیگن دل رو نگه میدارن وقتی میبینن که این آقای پورو حسابو طرف رسید دلشون خنک میشه به این دلیل کم کم این معنی بعد تبدیل به معنی ظریف و بازبغو یا و رو دیگه چنان بد و هر سوخ فرزند او نجاست از راه شهر حیوند او میبینی که شهر میگه سوق یعنی دشاد چنان بد و هر سوخ فرزند او نجاست از راه شهر حیوند او بخون تو ورگ عشق همدافت با اید. زدانه هاشون این گست این داستان داستان یعنی ضرب المثل یکی از معانی کلمه داستان ضرب المثل چون همینجور داستانی در نیست همچنین از افسانه افسانه هم یه معنی ضرب المثل است کتاب ترجمه البلاغ هم آمده که افسانه هر میشی را به پای افسانه سگ را بزنن یوز پند بیرد افسانه این یعنی ضرب المثل ارز کنم که به خونه پدر گرش هم داستان زدان آشنیده است این داستان که فرزنده بعد گر نر نرشیر به خون پدر هم نرافت بگید و یا در نهانش سخندیگر است باید والده پرسید خجوهنده را راست با مادر است یا یه قضیه در پنهان مطلب دیگه ای باشه هنگامی مادر ایشون در کرده بشه، اون از خود او با تایفت معادی که ولی و یا کار نهایان است، دو هندی گرای، تاج هندو و راز مامادا. سابق مایه، سابق مایه، یعنی همون که حالا می‌دونیم مایه، کم مایه. درست تارکی به سابق مایه در مقابل جوان مایه است. سابق مایه ذهاب که بیداد بدین چاره بگرفت که آفه کدار چاره چند بار اینجا گفتن بار بیشتر به معنی هیلگری و چاره اندیشی بد به کار همینجا این چیز ابلیس که ابلیس بهش گفتش به دو گفت من چاره سازم کرم یعنی یک سوار می کنم کلو هر دو از به دو گفت من چاره سازم نظهرش خیلی هست. بنابراین چاره مفهوم پیجورتیف داره مفهوم غیلی پسندیگه نداره ثبت وایزه ها که میلاگر به این چاره بگرفت گاه ها که به سر برمه ها و افسر بریشان برای ایشان ببخشید برای جلب کردن مردم یه مقداری مثل همیشه که ایجاست دولت ها بوده، مثلا نون رو عرضو میکردن یادمه که از 21 آزار اولین شلوقی بود که بعد از شهریواری 20 شده بود و بعد هم شلوقو فیدن تو مجلس و سر و صدا واضح حرفا دوره دوری خوامسلطان هم بود و تنگی سخت نون رو اینا بود نون اصلا دیرنم این اومد و قهتی بود و متفقه تمام گندوار می بردن نون سیلو یه چیزای بعد مردم بود چهار ساعت پنگ ساعت مثلا با باید برای اینکه سخت باید این که تازه سیبی که قوهی قبل خوردن بود دیوشون بیاد سلوخ شد و تو در دیر ساعتی جلسه علمی کسی نبود خودشون چون تو توی یک یه یه یه یه یکی پشت سندگی رو و یک یه یه رفتن سر سالجای رئیس میشستن و یه یه یه رفتن سالجای رئیس بعد صورت میکرد که این همچینه همچینه همچینه دولت همچینه مردم از گروه می‌رسید تو اومدن پدرشون در آمده کیه زنی هم جز این جماعت بایسته بود او کرد عبدالقدیر مای سرشناس همه هم هم سفید بود او کرد اون بغل دستیش گفت خب نه نه این پیره مرد رو نخصفزیرش کنه دیگه نون و عرضون می‌کاره <تصفيق> سیاسا دولت دولتا که از این خوابی رو موقع روزتر آمدن میکردن و از جا به حسر مردن. میکی ببخشید این روزی ابلیس سخن. وقتی کارش درست شد اون سخنش به برسی میشست. یکی پنده بد را نرفتند بزبانم اوالی که نه بود که گفت بو که بچه رو بردن مجب آخوان بگو الیف نگو، اواره بو سالو بگو الیف نگفت زیادش هر کاری که آخه تو چه با علاق می‌بیند که اون داحت کن نه دونام داحت نمی‌شد رخم علاق رخی که به هم من از آدم خواهر راحت کرده هلا قیسم که نهایی بوده که اول سر تخت پدرش می‌شونه راه شده بره زوی کار داشته وقتی کار رو برا شده یکی فنده بد راهن رو افکان کن این راه جدید شروع کار پای وزاری یه دوزیر ببیده خود رو گفت گرسوگ من طرفتی زگیتی همه طرفتیل یاد به من که طرف همه طرفتیل یافتی خیل مازیه رو جا رو نزاره همه طرفتیل دوغو اگر به سلوی من بیای همه اکام دلها رو مزاره هیچ وقت بحث اگیت نداره من لفت بگم حده خواهم آمد اینجا من تو میبخ سرم او بخیمه به همینگری اینجا, اینجا اردنگاه باید به سیغه موازی باشه بگی من تو رو تزدیج کردم و تو ازدواج زنم بگی قبول کردم اگر که ماره بعد بود بگیم برای این که مازی است که اگر سوی من کافتی زگیتی همه کامده نیافتی یعنی قطعا خواهی یاد اگر همچنین که جون مستقل و مستقل و اگر همچنین میست فرمان کنی فرمان تا هدن فرمان بردن نه پیچیز گفتار یعنی هردن رو کنی و کنی جهن سر به سر پادشاهی در یعنی پادشاهی جهن سر به سر بد و مردم و مرخ و تاهید بعدم صحبت دارن قبلن فردن. که کرده شد سه دیگر دیره یکی چاره کرد از شگفتن شگفت یه رقبازی ایلدهی و از سوار کرد میونه چیزای شگفت تازه این شگفت یکی شگفتن تازه این شگفت چیزای جوانی برای رفت از دیشت به جوانی برای نخونجو می نه دلو پردونم یافعی مخترم گفتون خستینه زیبا کشمگه تحمیده همیدون به زهرات من هر روز نمونداشت از آفرین دفتونم حفظ دادنش جزد میکرد معدق معدق منذنه بدون گفتاگر شهر را بر خورن اگه من بر پرش خالگر هم خالگر این عشقه اگه اگر قابل شهر باشن هم و اگر لیاقت خدمت بذاری داشته باشن من عشقه عشقه بشنید زهد جلبش در در دیگه خوش رو از این چو بشنید زهد من به بهر خورش جاگه صرف داشت خورش یعنی غذا از خوردن خوردن خور پیشه خورد. قل شینه مستری و تو با اموان خورش کنش روش خورش یعنی غذا یعنی خوردن تو بشنید زهر این وقتش زهر خورش جاگه صرف داشت کلید خورش خمه ی به دور داد بستور یعنی دون که ایشون یعنی نبودن زمان پرورش که کمتر بود از خوشبنی ها خوش. افتدائی ابتد... کارش شکار گرید ولی شکار بسیار کار مشکل میده اولا برای معذر خودش شکار نشه. دو این که پای برهنه اون سنگ و بدون اسلاحه فقط با چنگ و دنگو او رو میگیره برخوره این بار, بار آسو یه مقداری بداخل کلا شد و وقتی که میتونستین آجان میکنم و بیدیو و اون چه وقتی یه مقداری میپرداخته بین که میده بخور و علف بخور و بعدی رخ بخور و وقتی میاد زندگی کشاورزی رو شروع میکنه دیگه مستقر شده بود و خونه کشده زندگی داشت بود و قصه با داستان جمشید گفته اینجا دیگه کشت و کردن و این از که به اینکه که برن رو نبوده کم‌تر حیوانات که رام می‌کردن بیشتر پر معتوب از بسکی من شیرم یه مگه‌س دو ساعتانی اینجا بل کنم مرز ها اگر رو به استباه نگه برای استفاده از محصولات و پراورده ها و یکی چون این که میگه که وقت دارو و گواب دوشه و اینها رو خاطر کفر رو و بعدم دوستش رو بازم خایر مسائل طور یه مقداری حیبون رو بیارن به و تلکچه بکنن این صورت نبوده حالان که الان این عرفای فتبخته برای این درست میکنن که این سرشون دارن مصلافه دیگه این هدی دیگه این نبود فرافن نبودن زمن پرقرش که کمتر بود از کشتنی ها برش وقتی یک گابی گوستن دیدی که داشت میمارد مثلا گیش میکردن هر گوشت از مرخ از چار پاید گرشگر بیاورد یکی کچه اولین کار اینکار اینکار که انواع اصلا گوشتاور شد بود آقای هاش درزیز به خونش بپردن برسرش هنوز کلمه یه خونخار برنی قسمی قلب و بیوه زبان ما هم زبان عوام هم،, هم زبان عوام و این نشون اعتقادیست این که تصبر می که اگر حیبون یا هنسونی خون بخوره این میشه و خون خار میشه میگه این حیبوناتو به خون پرورش میداد برای که وقتی این باقی میگه فادشان بخوره فادشان مسیح پر در شون حالای <سؤال> نوم قناع بره درشتاد این صحب یا نداره برین مانفد چون انوwarzم زودocus خود اسود ب urge برون گنامش وشون آن فاریس بجاید از اینا رو به خون به خون مشروطتر شیر بدن تاکنه پرد این شرا باز اینجا چرا؟ برای اینکه صفان هرچه گویت فرمان به فرمان او دل گروبن برای که باید بگیر طبف ادیس هم این گیتی رو از مردم یعنی بر حقیقت عمل ابلیس بوده عمل با احریمن بوده و بوده برای اینکه نوزیاد و رو یعنی امسان رو از بردارید حدق ازید به همه این واضحات برمیت دارید سخان فرمان کند و فرمان رو بگروگان کند خورش زرده خایه در آداشونه بود درست به تخمه و هنوز در زبان اندوز ما کلمه خاگینه از همینه خاگینه خورای که زبای تخمه از کلمه این تا که هست و نظامی اونجا هم هست که با همار و طلاع باش میگرف باراب از اونه بعد بعد در نفتی فکرزوان اسفندرژه بود در شدم در خواهی ضروری مهر اون روزی و رخشم دوستی میگه که وقتی بس بشمی کنند سیه باید و تند و بولرد گرش زرده خایده داشت مخاطبانی این عزیزمانه اول گوشت بیزدهش اول با این که خوادتش بده خوراک هیوانی از زرده تو همون شد باید بگم که هنوز دو بیگه به منظور پیدا کاروان صفای باطن باید وقتی چهر نمیشنن چهر دوز هیوانی حیوانی یعنی پنیلی ها نمیخورم کنم چیرم نمیخورم حیوانی یعنی که گوشت بمیخورم فرش زرگه خواهی را آداش مخست این قصیل قبل عکسش عکس هنون تفایی باطن این تو هنون پیماتا بودن بدن داشتش یک زمان تندرست بخورد و بر او آفرین کرد سر و دفعا قضای خوشت کولیسترول داره کسی مربویت نیست باشه تخونهات انباه اخسان خوراکاش از پخش و از نیمگوش و از حاگینه شو از غذاهایی که باشه درست می کنن این دو هرش می کنید گوش مزاست بخورد و بر اخرین قطع سخت مجه یافت خانم مزاست اتقادی نیش خاندش برا نیک بر مجه یافت یعنی برانش مزاست و از ها لفت کافش، خفت کافش چون این رفت ساز که جاییزی شاد و گردن خرار. که فرداد زنگونه سازن خورش که از او سر به سر پردارش فرداد قضایی به طبعه حالا برسیم که دیگه همچی چیزی اصلا ندهیده باشه برفت و همیشه هم سگاهش گره که فرداز خوردن چه سازن میشه گره چون این لبا فهم شده ایخوان میخوان بخونیم بنده بگم خدمت دوستان تو اینجا از آقای میمونم و آسفن بکنن بعضی بازم مطالعه نمی کنن اینجا ولی اگر دو افتلاقی برای کنوندن باشه، بنده از خوده همه ایش فرد هم بهتر از که بخونه بلو این یه ضرور ای قرارت باشه اشفال نده بهتر از که بخونه که اوشباش فرصشون گریزه و خودشون شروع کنم به این کار اینه که وزمن کنه به شیغه همون شیغه ای که کلاس رو هفت از دویو می کنمی بطیم که و هم من و هم به تردید. از یکی, یکی اگر چه از و که اینا فعوش بنامالو اگرچه این همینکار رو در مورد شهرانا اینجا آزوستان چون حالا دیگه چند دیگه یکی اسفر به این کارو می برای جلسه باید خودشان همون عبد برد آقای قنبری سابقه این کار رو خوب بارن، بله بود. این طاقه زیفتی و هر دست درگون میکنن بین همه علماء که هر کنی داختاله بخوندن هستن اسمشون میلویسن، بنده یه تقدیبی کنم اونها خلاصه اختصاصی به آقای مون و آقای سفن نداره ببینید اما به هر حال بازم یه چند پیتی آقای مون زهر ببینشن. دیگر دل او وفر برابر دمم یا او چه سرد پرشای و تزر به سوی بسال دیوامدلی پرمی شاید تازیان چون بخواند است بر سر یک کم خرد متر عمر سه دیگر سدی به مرگ و کباب و فر به یار او یک سر به رود چهاران چو خان خورش کرد از پشت گاو جوان چی <تصفيق> در نیان به دوگندران زعفران و گلا همون سال خوردمه و مشکنا چو دست دستندر آورد و خرد شگفت آمدش دران خوشیبار من به دوگو بینگرد که تا آرزون به هو به از من ای نیک شو نیک به نیکو به تو کی باد همیشه به زی شاد و فرمان روا مرا دل سراسر پر از مهر تو همه چیز جانم از چه رد یکی حاجت هستم به پیروز شا. و وگر چه این پایگاه چه فرمان دهد تا سر به او بمالم بر اون چشم رو چو زهباد بشنید گفتار اون نهانی ندانست بازار اون به دودو دادم من این قام تو بلندی گرد مگر نام تو بپرمون تا دید چون جفته اون همی بوسه داد از بر سخت به ببوسید و شد در زمین نافدی کسا در جهان این شگفتی ندید دو مار سیاه از دو کتفش بروز قمی که تو از هر سوی چاره جوز سرانجان ببرید هر دو دکه سزر گربه به دیندر شگر چوشاخ شاخ درختان دو مار سیاه برا از باره از کتفشان پزشکان فرزانه گرد آمد. همه یک به یک داستان ها زدن هرگونه نیرنگ ها ساختن من اون درد را چاره نشنافتن به سان فزشگی پس ابلیس تف ابلیس تف پس ابلیس, طب. ابلیس به پرزانگی نزد زهر ها کرد به دو گفت این بودنی کار بود این بودنی کار بود, بود. به من تا چه گردن نباید نباید برون، یعنی خورش ساز و آرامشون ده بخر نباید جز این چاره‌ای نیز کرد به جز مغز مردم، مده‌شان خورش مگر خود بمیرند از این پربرش سر نر دیوان از این جستجون چه جست و چه دیدن در این گفته بود مگر تا یکی چاره سازد نهان که پردخت ماند مردم جهان. بسیر منظر می که همون اطلابی جعوستن میگه که برگانی ها و ضحف، ازده ها و حضیبان ازباه اجازه میده که مردم رو ازمین و با از سکنی از مردم خابی بکنه و برگانی های اون مغرومه رد کردن برد مکرد شد ای به همین اینجا میگه که حضیس از همه این بازی ها نظرش بود که هر پرداختن از معنی خالی پرداختن به اکسش مشغول شدن من دل از مهرتو با غیر نفرداختن یعنی از مهرتو خالی نکردم و به مهرت دیگری پر نکردم نازنی ما تو دل از ما به که پرداختی پرداختن از یعنی فارق شدن یعنی خالی کردن اگر چیز کشه سبری که بود مایه سعدی تفهم شد سختی مکن که کیسه تو پرداخت نشد یعنی خالی پرداختن از و این خابط جان ما پرداستان به معنی مشهور شدن برخلاف پرداستان از یعنی فارغ شدن پرداستان ب یعنی مشهور شدن گفتم و بعد این این هست و بعد کردن از یعنی رو بعد دادن و خابط جان ب یعنی مالوش یا حدیثی از پیغمبر اوشان نقومی کنند ام نقاه سنتی فمن رغب و ام سنتی فلایی سنتی وقتا بچه بیدیم کن که او من خودی خوب نبود رغبه رو منی این میگرفتیم بس می, می کنید رغب و ام سنتی فلایی سنتی نبینیم یعنی چی که رغبت مکنه بفهم میکنیم که باشه روش میگم که هست چون واسه معنی گفتن که نه نکنن است. هرکسی از رو برگردونه از دین نیست. رحمت واقعا از با صلاح و مشغول است. همین از ف میگه جهانیان به مهمات و مشغول به مشغول یعنی کسب و کار ماریا تو شغلی از جهان خارج یعنی بری تو مشغول از جهان خارج جهانیان به مهمات و بیزغان مشغول مرا پرو تو شغلی از جهان خارج که من به حسن تو ماهیمت می‌باید کارو که من به قبل تو سر می‌بینم پردخ، پردخ این پردخت، پردخت ماند زه مردم جهان یعنی مردم دنیا و از دن خب، ارز کنم که اینجور که هلا نمی‌رسیم که فقط تو ملاوظم می‌کنید چند کلمه اینجور بگم اینجور بگم از درسته که اول از کفرات شد کرد باید از گوشت مرگ که لدیفتار و لدیفتاره الانم به عنوان گوشت سکی اصطلاح شکستاره کم ملاکتاره بود نمیدونه برهارش کمکاره از کپ نظر و سدیدو اینا آمد چیزی ساختو باید اول کپ بزر روز چهاران پشت و و عربان برد. اون الان اونام نیست. الان نیست. ولی من بر جوانی یاد دارم. چه پیرمردی بود، چلویی، با کوچه پشت مسجد حالا حالات همونوسی درگیش بیده یه حالات های خاصی داشت و برای خوبی خوبی و یه بست های خوبی نفصلی هم ولی یه ادهی میشرفت انگام میرفت این, این چیزایی که مصرف میکرد همه ببار جدی روحان ببار جدید که مشایی که هم نداشت خورش داشت و چلاه داشت و, و همه جنسایی که مصرف میکرد بهترین ماهش این درنجی که می داد او یک گلاب بود این مرد وقتی که چلا رو تو را سوزن بگیر تو عبش موقع که تا اونجش او گلاب بود و اوندوز به نظر در ظلم باید بگم که کدما هرچه هرچه به قدیم میریم به همینجور رنگ های کامیونیوز داشتند به طریقه رنگ ها ساعت و فرنگی پایی پایی پایی پا نه کاشید درشت و پررنگی یا در حقیق رنگ حریبه رو چند رنگ کم رنگ رو یا گلویز رو چشمشون ترگید نشترین رنگ همچنین است در مورد تعم که یک قد وستند فرنکن کنگا رو تعمه خیلی شور پایل تونگ، پایل چرپ از کارشون عظیم و ایتریگی آدم ها ای من بچه بودن بهتامین که مورده مذابود عبسی خفتار کاشون هران مثلا من صرف بودن یعنی، سردر شیرینی رو شیری در پاریس اگه شو بغلبا کسی یه ذاری که فرانسطهی در همجا دیده ست خست روی دیده روز یک دیده با این است که زبان مرادی مثل نوشک با هم که قبلن عرض و گلاب و و این ها این ماله هم دوبه که قرار گلاب وضو فبا بنه و و و ابال صرفان گلاب سقوط نمی بابا بابا کردن و چه